مرز سلام و ادب و احترام، خدمت دوستان عزیز و گرامی و همراهان مجموعه ها امشب با قصه دیگری از سری قصه‌های فولکلور ایرانی در خدمتتون هستم. این قصه اسب آتشین. آیا پسر داشت و یه روز به سختی بیمار شد و فرزندای خودش رو صدا کرد و گفت من دچار بیماری سختی شدم که فقط یه راه علاج داره و اونم مالیدن مقداری خاک به زیر پاهام از زمینی که جای پای هیچ بشری به اونجا نرسیده باشه پسر بزرگ گفت پدر من میرم و همچین خاکی رو پیدا میکنم تا شاید شما دوباره سلامتیتون رو به دست بیارید حاکم اسب آتشینی داشت که میتونه سریعتر از پرندگان هم پرواز کنه ولی هیچ کدوم از اون پسر از وجود اون اسب خبر نداشتن. اون اسب توی یه جنگلی نزدیک شهر نگهداری میشد. خلاصه پسر بزرگ همون شب سوار بر اسب خودش شد و چهار نل از اونجا دور شد. تمام طول شب رو به تاخت پیش رفت و با طلوع خورشید به جنگل تاریکی رسید درخت های اون جنگل اینقدر به هم فشرده و انبوه بودن که قدرت عبور از میونه اونها رو نداشت بنابراین از از پیاده شد و جیبهاشو پر از خاک زیر درخت ها کرد و به قصر برگشت حاکم از بازگشت پسرش خوشحال شد و پرسید اون خاک رو از کجا آوردی؟ و پسر بزرگ نشونی اون جنگل رو داد حاکم خندید و گفت پسرم من خودم بارها توی اون جنگل شکار کردم و این خاک درد من رو دوانه نمیکنه. پسر دوم گفت پدر اجازه بدید من خودم برم و مقداری از خاک از زمینی بیارم که پای هیچ بشری به اونجا نرسیده باشه حاکم دوباره موافقت کرد و پسر دوم سوار و اسب خودش شد تا به جستجوی خاک شفا بخش بره. همینطور که پیش می رفت به دره تنگ و عمیقی رسید که قدرت عبور از وسط اونا نداشت. با خودش گفت اینجا باید همون جایی باشه که پدرم منظورش بود پس جیبهای خودشو پر از خاک کرد و برگشت. پدرش که در بستر بیماری بود محل اون خاک و پرسید. و همین که فهمید که پسرک اون خاک را از کجا آورده آه عمیقی کشید و گفت پسرم حتی پیش از اینکه تو به دنیا بیای سربازای من برای مقابله با دشمن به اون حوالی رفته اونجا رو زیر پا گذاشته نه فرزند عزیزم این خاک درد منو درمون نمیکنه. فرزند سوم پادشاه جلو رفت و گفت پدر اجازه بدین که منم برم و برای درمون شما شانس خودم امتحام امتحان کنم حاکم جواب داد دوتا برادر بزرگترت موفق نشدن تو چطوری میخوای موفق بشی پسر کوچکتر گفت به من اعتماد کنید پدر اگر شما به من برکت بدید من موفق میشم حاکم دلش به رحم اومد و گفت برو فرزندم خدا به همراهت امیدوارم موفق برگردی و پدرتو شاد کنی پسر جوان به مخصوصی نداشت با پای پیاده راه افتاد هنوز از شهر خارج نشده بود که پیرمردی مردی رو با ریش سفید و بلند دید پیرمرد مرد با دیدن این پسرک در اون وقت روز متحیر شد و گفت پسرم تکو تنها کجا میری؟ پسر کوچیک حاکم گفت پدرم بسیار مریضه و من دنبال نقطه میگردم که پای هیچ بشری به اونجا نرسیده باشه تا خاک اونو بردارم و برای مالجه پدرم بیارم پیرمرد گفت پدر شما عصب آتشینی داره که فقط اون قادر به یافتن همچین خاکیه این اسب رو تو دل اون جنگل نگهداری میکنه تا تاریک شدن هوا صبر کن بعد از اون به اتاق پدرت برو اونجا یه شلاق روی دیوار آویزونه اونو بردارو آروم از اتاق خارج شو بعد از اون به سراغ اسب آتشین تو جنگل برو اسب به محض دیدن تو به طرف تو حمله میکنه تا تو رو بکشه شلاغ و بلند کن و بگو اسب آتشین مواظب باش که چیکار کار میکنی؟ من صاحب تو هستم اسب به سرعت آروم میشه و اجازه میده که تو بر پشتش سوار بشی و هر جا که میخوای بری جوون از پیرمرد تشکر کرد و طبق گفته های اون عمل کرد و سرانجام تونست به راحتی سوار عصب آتشین بشه بعد با سرعت برق از جنگل بیرون رفت و در یک نقطه دور دست کنار یک دریاچه به زمین نشست چشمای پسر جوون به پر درخشانی نزدیک ساحل افتاد پس پیاده شد و اونو برداشت و چون از اونو دید به سخن اومد و گفت مواظب باش جوون اون پر مرغ رو بر ندار زیرا که تو رو به زحمت میندازه اما پسر جوان توجهی نکرد و اون پر درخشان و نورانی رو توی جیبش گذاشت. یک بار دیگه به راه افتادند تا اینکه به شهری تاریک رسیدند. جوان از پشت از پایین پرید و پر اون مرغ درخشان رو به سر چوبی زد. به محض اینکه این کارو کرد تمام شهر روشن شد. سلطان و اون سرزمین با دیدن این تغییر ناگهانی حیرت زده شد و به زیر دستور داد تا علت این امر رو کشف کنند. افراد سلطان به نقطه ای که اون پر درخشان نصب شده بود رفتند و اونو برداشتند و همراه پسر جوون پیش سلطان آوردند. سلطان با دیدن اون پر گفت ای جوون غریبه تو کی هستی که فکر میکنی میتونی از ظلمت سرزمین من فرار کنی؟ من برای تو سه شرط قائل میشم و اگر بتونی اونا رو انجام بدی تو رو آزاد میکنم وگرنه نه به جرم شکستن صد تاریکی تو رو خواهم کشت پسر جوون گفت من در اختیار شما هستم سلطان گفت شرط اول اینه که باید بری و پرنده صاحب این پر رو پیدا کنی و زنده به اینجا بیاری جوون پاسخ داد سلطان به سلامت باشن یک روز به من فرصت بدین تا راهی براش پیدا کنم سلطان گفت اگه بخوای سه روزم بهت فرصت میدم جوون کمگین و متفکر پیش اسبش اومد اسب آتشین پرسید ای ارباب جوون چرا رنگت متأثر و ناراحتی؟ جوون پاسخ داد سلطان سه شرط برای خلاصی من گذاشته. شرط اولش اینه که پرنده صاحب این پر رو پیدا کنم و زنده به اینجا بیارم. اسب گفت اگه به من گوش این اتفاق نمیافتاد ولی دیگه کار از کار گذشته حالا باید به فکر چاره بود. برو پیش سلطان و بهش بگو بیست بطری شراب سفید، یک بیل و یک چوب پنبه بزرگ به تو بده و وردار بیار پیش من. سلطان تمام این چیزها رو که خواسته بود به جوون داد و اسب آتشین در یک آن ارباب جوون خودش رو از شهر تاریکی خارج کرد و به جایی برد که چشمه اونجا بود. اسب گفت قبل از هر کاری باید با این چوب پنبه جلو آب رو بگیری بعد از اون هر دو طرف چشمه چاله بکن یکی برای خودت یکی برای من بعد که این کار کردی اون 20 بطری شراب رو هم تو چشمه بریز موقع غروب پرنده پردرخشان برای خوردن آب به این چشمه میاد و به جای آب شراب رو مینوشه و در نتیجه مست میشو زمین میفته تو تو نیونو بگیری و با خودت ببری شب که شد پرنده به اونجا رسید و کنار چشمه نشست و مشغول نوشیدن شراب شد و به طور ناگهانی سرش گیج رفت و درون چاله ای افتاد که پسر جوون اونجا نشسته بود جوون اونو برداشت سوار اسبش شد و به سوی شهر ظلمت برگشت ناگهان تمام شهر مثل روز روشن شد و جوون پرندر رو به قصر سلطان برد. سلطان گفت حالا که شرط اولیار انجام دادی شرط دوم رو هم باید اجرا کنی کمی دورتر از اینجا دختر بسیار زیبایی زندگی میکنه اون صاحب چهل گاوه که میتونن با سرعتی بدوند که حتی باد هم به اونا نمیرسه باید بری و اون دختر رو برای من بیاری جوان گفت بسیار خوب ولی اول باید یه مقدار فکر کنم. بعد پیش اسبش برگشت و جریان رو برای اسب تعریف کرد. اسب گفت: ها "بله من اون دختری رو که صاحب چهل گاوه میشناسم. این مسئله بسیار مشکلیه ولی به هر حال اون انجامش میدی مشکلی نیست." روز بعد صبح زود جوان سوار بر اسب آتشین خود شد و به نقطه دور دست رفت که در اونجا یک عمارت بزرگ بود اسب گفت این همون جاییه که دختره در اون زندگی میکنه از اون در باید داخل بشیم از پله ها بالا بریم و وارد اتاقش بشیم خودمونو پنهون کنیم اون دختر به همین زودی که بیاد تو اتاق و صورت خودش رو بشوره تو باید بلا فاصله ترهٔ موهاشو بگیری و تا وقتی که به شیر مادرش سوگند نخورده که همراه تو نزد سلطان بیاد اونو رها نکنی جوونک طبق دستورات و راهنماییهای اسب عمل کرد و دختر رو با خودش آورد به شهر ظلمت این بار سلطان گفت حالا آخرین شرط باقی مونده اگه اون انجام دادی تو رو آزاد میکنم که به سرزمینت بری و اون شرط اینه که چهل گاو دخترک رو هم برای من بیاری چرا که شیر اون گاوا مردم رو جوون میکنه مرد دوباره پیش اسبش رفت و این شرط آخر رو هم به اسب گفت اسب گفت فکر میکنم این یکی دیگه خارج از قدرت ما باشه بهتره بری پیش دخترک و راه چاره را از خود اون بپرسی جوون رفت سراغ دخترک و دید که اون به تلخی داره گریه میکنه اون دختر گفت بله درسته این مسئله خیلی مشکله اجازه بده این انگشتر رو بردار بر اسب خودت سوار شو و به خونه من برو وقتی که به نیمه راه رسیدی گافه ها رو در دور دست خواهی دید این انگشتر رو به هوا بنداز به محض اینکه چشم گاوا به اون بیفته به طرف تو خواهند اومد تا تو رو بکشند و تو باید به اونها پشت کرده و به سرعت فرار کنی تا مبادا به تو برسن پسر جوان راهنمایی های دختر رو به کار بست و با اسب آتشین سریعتر از همیشه به سمت چراگاه گاوها رفت وقتی که چشم گاوها به انگشتر بانوی خودشون افتاد قررشی کردند و به طرف جوون حمله ور شدن تا اون رو زیر پاشون لگد مال کنند در این لحظه دخترک از قصر خارج شد و فریاد زد ای گاوهای وفادار من بانوی شما اینجاست گاوها توقف کردند و کنار دخترک جمع شدند و دخترک گاوها را به سلطان سپر اما سلطان از دخترک خواسته بود که با اون ازدواج کنه اما دخترک امتنا میکرد و تن به عروسی نمیداد. اما همین که چلگاوش رو آوردن سلطان دستور داد تا اونا رو بدوشند. سپس به دخترک گفت که سر اونو با شیر بشورند. دختر زیبا شیرها رو جوشوند و بعد بر روی سر سلطان ریخت و در نتیجه سلطان مسن کشته شد و دخترک با پسر جوان ازدواج کرد زیرا از همون ای که چشمش به اون پسرک افتاده بود یک دل نصد دل آشق اون شده بود از وقتی که پسرک پدرش رو ترک کرده بود و دنبال اون خاک پاک میگشت سه روز گذشته بود و چون جریان به عروس جوان خودش گفت دخترک مدتی به فکر فرو رفت و گفت در تمام زمین فقط یک نقطه وجود داره که پای هیچ بشری به اونجا نرسیده و این نقطه در غعر یک دریاچه است. ولی تو باید با اسب آتشین خودت به اونجا بری چون راهی که میخوای بری بسیار پرخطره و عصبهای آبی خطرناکی از اونجا محافظت میکنند اسب آتشین که اون دریاچه کجاست پسر جوون رو به سرعت به اونجا برد و گفت جوون حالا وارد آب شو اینجا مملو از اصبهای آبی و مادیون هاست اگر من به مادیون ها برسم مقداری خاک با خودم میارم ولی اگر با اصبها برخورد کنم از حمله اونا فرار نمیتونم بکنم و اگر تو متوجه شدی که رنگ آب بر اثر خون من قرمز شده بدون که من در حال جنگ با اصبها هستم و در حینی که من اونا را سرگرم کردم تو مقداری خاک بردار و فرار کن اسب آتشین خودش رو به دریاچه انداخت و دست برغزا با چند تا مادیان برخورد کرد مقداری از خاک کف دریاچه رو برداشت و در حالی که با مادیون ها به سمت ساحل شنا کرد اما مادیون ها به شجار روی مقدار مجروح کردند و آب سرخ رنگ شد چون چشم جوون به این صحنه افتاد قصد کرد که خودش رو به آب بندازه که ناگهان اسب آتشین از آب بیرون اومد جوون به طرف اسب دوید و اونو بغل کرد بعد خاک رو برداشت داخل دستماری پیچید و در جیبش گذاشت اسب آتشین به سوی شهر ظلمت پرواز کرد پسر جوون همسر خودش رو از سلامتیش مطمئن کرد و به سمت سرزمین پدریش روونه شد. به محض اینکه به قصر رسید، اسب رو به استبل برد و خاک رو از جیب خودش در آورد و نشونی اونا داد. اما از ترس اینکه مبادا پدرش از دستش عصبانی بشه، در مورد اسب و آتشین حرفی نزد و سلطان هم سالی نکرد. به محض اینکه خاک رو به کف پای سلطان مالیدن، فوراً حالش خوب شد و آنچنان خوشحال شد که اسب آتشین رو به پسرش هدیه داد و شلاق مخصوص رو هم به اون سپرد تا بتونه بر اون حیوان تسلط داشته باشه پسر سوار اسب آتشین شد و به شهر ظلمت رفت و به سراغ عروسش رفت اما ساکنین اون شهر که حالا به برکت وجود پرنده پردرخشان شبتاب از تاریکی خلاص شده بودند شهر خودشون رو شهر روشنایی اسمگذاری کردند و پسر جوون رو هم به عنوان شاه انتخاب کردند و اون دختر زیبا هم ملکه اون سرزمین شد و زندگی ای رو شروع کردند از آتشین هم با عقل و دانایی و مهارتش همچنان به ارباب جوون خودش خدمت میکرد خوب دوستان عزیز این قصه هم به پایان رسید. امیدوارم از شنیدن این قصه لذت پرده باشید. تا برنامه دیگر و قصه دیگر همه شما رو به خدای مهربان می سپارم. روز روزگارتون بکام.